کتاب قصه های پریان سری زرشکی جلد اول و دوم نویسنده اندرو لانگ ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افثانهی سوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده مایا سالار. به نام خدا داستان عافیت باشد. در روزگاری بسیار دور پادشاهی قدرتمند حکومت میکرد. اون هر وقت عدسهی میکرد هر کسی در سرتاسر سر کشور با شنیدن صدای عدسهش باید میگفت آفیت باشه. خلاصه. بعد از عدسه پادشاه همه این جمعه کوتاه رو به زبان می آوردن به جز، چوپانی که چشمایی بر میده داشت اون اصلا این جمله رو نمیگفت و برای پادشاه طلب عافیت نمی کرد پادشاه از این موضوع باخبر و خیلی خشمگین شد دستور داد چوپان رو به نزدش بیارن چوپان اومد و روبروی تخت سلطنت ایستاد پادشاه که بر تخت می نشست ظاهری شکوهمند و قدرتمند پیدا میکرد اما با همه قدر قدرتیش چوپان ذره حراس به دل راه نمیداد پادشاه ای کرد و فریاد زد زود بگو عآفیت باشه چوپان گفت عآفیت خودم باشه پادشاه از خشم مثل توفان شد. عافیت خودم خودم پس فطرت در به در و دوباره شنید حضرت ها عافیت خودم باشه پادشاه قرید و از خشت مشت به سینه کوبید و گفت اما بگو عافیت من عافیت خود من چوپان گفت باشه همین رو میگم عافیت من البته که عافیت خودم و با انگشتاش نرم و آروم به سینه زد پادشا از خشم مثل کوری از آتیش شده بود و نمیدونست که چه باید بکنه همون موقع وزیر بزرگ مداخله کرد و به زمزمه در گوش چوپان گفت فوراً بگو آفیت باشه، علا حضرت. اگه نگی جانت رو از دست میدی. و چوپان پاسخ داد. نه، نمیگم. مگه زمانی که شاهدوخت زنم بشه. البته همون موقع شاهدوخت روی تخت کوچیکی کنار پدرش نشسته. اون مثل کفتر تلای کوچیکی دلشین و زیبا بود. همین که اون حرف چوپان رو شنید نتونست جلوی خندش رو بگیره چون حقیقت انکارناپذیری بود که اونم از چوپانی که دارای چشم‌های ورقلو میده بود خوشش اومده بود در واقع مهر چوپان بیشتر از مهر هر شاه سادهی که تا اون زمان دیده بود به دلش نشسته بود پادشاه که از رفتار دخترش اصلا خورسند نبود و از شوپان هم به هیچ وجه خوشش نمیومد دستورداد که اون رو تو قفس خرس سفید بندازن سربازا اون رو بردن و تو قفس خرس سفید انداختن که دو روز تمام غذایی نخورده بود و خیلی گرسنه بود تازه در قفس رو بستن که خرس به طرف شوپان جوان حمله بکنه اما همینکه های برجسته بیرون زده از هدقش رو دید از ترس اینکه مبادا خودش خورده بشه پا کشید خرس به گوشه رفت و از همونجا به اون خیره شد خرس با اینکه خیلی گرسنه بود جرئت نکرد به سراغش بره و از گرسنگی پنجولهاش رو با زبونش لیسید چوپان فهمیده بود که اگر لحظه‌ای چشم از خرس برداره بدنش درازگشت توی قفس خواهد افتاد پس برای اینکه خوابش نبره تا صبح زیر آواز زد صبح وزیر بزرگ که اومده بود عستخونهای چوپان رو ببینه در نهایت شگفتی اون رو زنده و سرحال دید اون چوپان رو نزد پادشاه برد که اون هم با دیدنش از شدت خشم و عصبانیت فریاد زد خب حالا که تا مرگ پیش رفتی و اونو به چشم خودت دیدی زود بگو که پادشاه توی سلامت و عافیت باشه چوپان در پاسخ گفت حتی اگر ده بار به مرگ محکوم بشم باز هم نمیترسم فقط در صورتی این جمله رو مییم که شاه دخت همسرش بشه پادشاه فریاد زد پس برو به درک و دستور داد که اون رو توی گودال گراس های وحشی بندازن گرازها یه هفتهای میشد که غذایی نخورده بودند و وقتی چوپان توی لونشون انداخته شد در یک آن به طرفش حجوم بردن تا یک لقمه چپش کنند اما چوپان فورا نیر رو از آستین پیراهنش درآورد و نوایی شاد سرداد که با شنیدنش گرازهای وحشی اول کمی عقب رفتند بعد روی پاهای عقبیشون ایستادند و میون گودار شادمانه پایکوبی کردند گرازها خیلی خنده دار بودند اما چوپان هر کاری کرد که بخندند نتونست اون جرعت نداشت دست از نینوازی برداره چون میدونست هر لحظه که نینزنه نزنه ها به سرش خواهند ریخت و تک تکش خواهند کرد. این بار به نینوازی ادامه داد و گرازهای وحشی هم به آرامی و آهستگی میرخزیدن. چوپان هم گاه به گاه تونتر و سریتر نینیزد. گراس ها که دیگه به راحتی نتونستن چرخ بزنن و به قدر کافی تند و چاوک بالا و پایین بپرن از خستگی زیاد در حالی که از نفس افتاده بودند یکی یکی فرسوده و بیحال روی زمین ولو شدند سرانجام چوپان با دیدن بدنهای ولو شده گراس ها زیر خند زن. اون خندید و همچنان بلند بلند می خندید وقتی وزیر بزرگ صبح روز بعد به سراغش رفت به جای عسهخن خرد شده خود چوپان رو دید که از شدت خنده عشت از چشماش سرازیر و گونه رو خیست کرده بود بعد از اینکه پادشاه لباس پوشید و به تالار اومد چوپان به حضورش شد. اون با دیدن چوپان بیشتر از دفعه پیش خشمگین شد و از این فکر که چرا گرازهای گرسنه اونو از هم ندریده بودن پر از خشم و عصبانیت شد و گفت خب این بار هم مرگ رو به چشم خودت دیدی. حالا بگو پادشاه تندرست و در عافیت باشه چوپان باز گفت صد بار هم مرگ رو ببینم حراسی به دل راه نمیدم اگر شاه دخت رو به همسریم در نیاری هرگز این جمله رو از من نمیشنوی پادشاه اورشکنان گفت پس به مرگی صد باره خواهی مرد و دستور داد که اون رو توی گودال تیغها بندازند سربازا اون رو کشون کشون به سیاه چالی بردن که وسطش چاه عمیقی قرار داشت که دور تا دورش پرستیخ های دراز تیز بود ته چاه روشنی کمی دیده میشد که اگر کسی را تو چاه می به کمک اون روشنایی می‌تونستن اون رو ته چاه ببینن وقتی نگهبانا چوپان رو به سیاه چال بردن از اونها تقاضا کرد که چند لحظه اون رو به حال خودش بذارن تا نگاهی به ته گودال تیقه ها بندازه، شاید منظری اون گودال اون رو به خودش بیاره و برای سلامتی پادشاه بگه که عافیت باشه. نگهبانا اونو رها کردن. چوپان هم چوب دستش درازش رو از قسمت شکاف های رداش گذروند و اون رو از سر گودال به داخل انداخت و کلاهش رو روی اون قرار داد بعد کوله پشتیش رو توی ردا تپوند. به طوری که به نظر میرسید بدن یک نفر تو دهانه گدال آبیزونه. البته چوپان خودش رو تو گوشه از دهانه تاریک چاه موازی با ردای آبیختش پنهان کرده بود. اون از توی دهانه چاه نگهبونا رو صدا کرد و به اونها گفت که پس از بررسی موضوع به این نتیجه رسیده که نمیتونه به این راحتی یا سلامتی و آفیت پادشاه رو آرزو کنه. پس ترجیح میده که به داخل گودال پر از تیخهای برنده انداخته بشه. نگهبانا چوب دست رو از روی لبه چاه برداشتن و ردای تپونده از کول پشتی و کلایی روی اون بود و به ته چاه انداختن. اونا زیر روشنایی ته چاه دیدن که بدن رداپوش و, و کلا در ته چاه فرو رفت. این بود پایان زندگی چوپان اما اون که خودش رو در گوشه از دهانه تاریک چاه پنهان کرده بود قا قا زیر خنده زد تقریبا صبح زود بود که وزیر بزرگ چراغ به دست به سیاچار رفت و همین که چوپان رو زنده و سالم دید، نزدیک بود از تعجب پس میافته. اون چوپان رو پیش پادشاه برد که این بار هم خشمگین و قذبناک از دفعه پیش با صدای بلند گفت. خب، درسته که زنده موندی، اما صد بار مرگ رو به چشم خودت دیدی، حالا بگو که پادشاه همیشه تو عافیت باشه. اما چوپان جوان مثل همیشه جواب داد، نمیگم مگر زمانی که شاه دخت زنم بشه. پادشاه که دید به هیچ طریقی نمیتونه چوپان رو به راه بیاره، دستور داد که کالسکه سلطنتی رو آماده کنند. اون از چوپان خواست که سوار بشه و خودش هم کنارش نشست. پادشاه به کالسک ران دستور داد که به طرف جنگل نقره بره. وقتی به اونجا رسیدن گفت جنگل نقره رو میبینی؟ خب اگه بگی پادشاه تو عافیت باشه این جنگل رو به تو میدم. اون امیدوار بود که شاید آخر وضعی پیش بیاد که چوبان براش آرزوی عافیت کن. چوپان که اول داغ و بعد سرد شد، همچنان روی خاستش مقابمت کرد و گفت تا وقتی شاه دوخت همسرم نشه نمیگم. پادشاه واقعا ما تا گیت شده بود. کالسک جلوتر رفت تا به قصری باش شکوه رسیدن که سراسر تلا بود. اون گفت قصر طلا رو میبینی؟ خب. اون رو به تو میدم جنگل نقره و قصر طلا مال تو فقط جمله عافیت باشه رو به من بگو چوپان که با دیدن قصر و منگ شده و دهنش از تعجب باز مونده بود باز هم مقاومت کرد و گفت نه نمیگم مگر زمانی که شاه دخت زنم بشه این بار هم غمی سنگین به دل پادشاه نشست و اون رو پریشان خاطر کرد. اون به کالسکران دستور داد که به راهش ادامه بده. اونا به سمت حوز الماس رفتند. وقتی به اونجا رسیدن پادشاه سعی کرد از زیر زبون چوبان حرف بیرون بکشه. اون گفت حوز الماس رو میبینی؟ جنگل نقره و طلا و حوز مال مالتو؟ اگر تو هم مثل همه مردم هر بار که عدسه میکنم بگی عافیت باشه همه اینها رو به تو میدم. شوپان چشمه های ورقلومیدش رو محکم بست تا برق درخشان الماس آزردش نکنه. اما باز هم گفت نه نه این جمله رو فقط زمانی میگم که شاه دخت به همسریم در بیاد. پادشاه که متوجه شد تمام کوششهاش بیفایدست و چوپان زبونش به گفتن همچین جمله ای باز نمیشه در آخر گفت بسیار خوب دیگه برام فرقی نمیکنه دخترم رو به هم درمیارم اما تو واقعا و صادقانه باید بگی که همه چیز برای پادشاه به عافیت باشه چوپان گفت میگم البته که میگم. چرا نباید بگم؟ دلیلی نداره که نگم. با شریدن این حرف پادشاه بسیار خوشحال و شادمان شد. این خبر سراسر کشور به گوش همه رسید و به خاطر عروسی شاهدخت دخت همه جا جشن و سروب بپاشد. همه مردم از اینکه که شاه دخت با وجود داشتن خاستگارایی از های سلطنتی، بدام عشق چوبحالی با چشم‌های ورقلمیده گرفتار اومده بود شادمانی کردند چنان جشن عروسی با شهویی بپا شد که مردم مثلش را ندیده بودند همه جا بساط سور و سات بود حتی بیمارها هم توی جشن شرکت کردند همه به نوزادایی که تازه به دنیا اومده بودند به خوشی و مبارکی پا قدمشون هدیه هایی دادند. اما جشن شادمانی بزرگ توی قشب بپا بود اونجا بهترین نمایش ها اجرا و گواراترین غذا ها پخت و خورده شد آدم های زیادی پشت میز نشستند و همه سراحال و شادان بودند. وقتی که مهتر بزرگ طبق رسم اون سرزمین سر بزرگ پخته گوسفن رو توی سینی بزرگی به تالار آورد و پیش روی پادشاه گذاشت، اون با بابارشش سهم هر کسی رو توی بشخابش گذاشت. بوی ادویه هایی که موقع پخت به کله ووسف زده بودن، چنان قوی بود که پادشاه از ته دل عسه ای بلنگ کرد. عافیت باشه سرورم. این جمله رو چوپان، پیش از این که کسی دیگه‌ای بتونه زودتر بگه، به پادشاه گفت. پادشاه با شنیدن این جمله از زبان دامادش بسیار شاد و دلخوش شد و رضایت خاطر پیدا کرد. اون از اینکه دخترش رو به همسری چوپان درآورده بود، بسیار خرسند و راضی بود. با مرگ پادشاه پیر، چوپان بر تخت سلطنت نشست. اون فرمانروای خوبی بود و هرگز از مردم انتظار نداشت که برخلاف میل و خاستشون برای اون آرزومندی تندرستی و عافیت کنن اما به هر حال مردم اون سرزمین همیشه برای اون آرزوی سلامتی می‌کردن چونکه که اون رو از ته دل دوست داشتند. کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای صوتی نشانی کانال تلگرامی t.me/mehrandousti t. نقطة م.ي. slash نشانی وبلاگ ما m e h r n d o u مهران کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد بوستانی